سلام دوستان من امیر یاری هستم و این پادکست دیجی میج روز پیش من روی کانال دیژی میج روی کانال تلگرام دیجی میج یه ویدیوی رو منتشر کردم که دو نفر به نام های فیل چستر و سارا باین این ویدیو رو درست کردن یه ویدیو کوتاه دو دقیقهیه که این دوتا که یک خانم و آقا هستن توی اون تعدادی از جست های عکاسی پورترو و عکاسی اسپورت و اینها رو میگیرن و توی اون مثلا, یک، مثلا هم دیگر در آقوش میگیرن و کنار هم میشینن دست هم رو میگیرن و اینها جستایی هستش که ما از اون رو استفاده می برای عکسای اسپورت و عکسای عروسی خیلی ویدیو جالبی بودش و خب خیلیا گفته بودن که این از کجا آوردین من خواستم یک توضیحی در باره این بدم که این ویدیو رو از کجا آوردم بعد اومدم رفتم توی کانال یوتیوب اینا و بعد دیدم که اینها هر دوتاشون تاشون عکاس هستن و سوژه خوبی هستن که من بخوام اینستاگرام اونها رو نگاه بکنم و توی قسمت معرفی اینستاگرام عکاسان که توی وبسایت دارم درباره اونها صحبت کنم. نکته جالبی که درباره این دوتا فرد بود، اینه که هر دوتا اینها عکاسن. یک آقا و یک خانم جالب اینجاست که هر دوتاشون توی اینستاگرام کانال دارن، هر دوتاشون وبسایت دارن، هر دوتاشون عکاسی اسپورت و عکاسی عروسی میکنن، هر دوتاشون خیلی عکساشون شبیه به همه و خیلی وبسایتاشون شبیه به همه. تقریبا انگار که وبسایتاشون یکی هن. و ظاهرا این که هر دوتا اینها با هم دیگه نام زدن به این دلیل که وقتی که داشتم اینستاگرامشون رو نگاه میکردم اکثر رو دیدم که اینا از خودشون گرفته بودن جلو آینه مثلا پوز گرفتن عکس گرفتن اینها و خیلی برام جالب بودش که این زن و شوهر یا حالا دوست دختر و دوست پسر یا هر شکل دیگه که هستش اینها هر دوتاشون تاشون عکاسای حرفه‌ای ولی خب نکته عجیبی که برام بودش اینه که اینها چرا اومدن وبسایت‌های جدا زدن چرا اومدن اینستاگرام های جدا زدن انگار که اینها میخوان میخوام برندینگشون از هم دیگه جدا بکنن اما همه چیزشون هم یکیه اما چیزی که توی اکسه اینها خیلی نظرم رو جلب کرده،ش اینه که فرمایی که به عروس داماد دادن یا فرمایی که به اون زوج هایی که ازشون عکاسی کردن دادن خیلی فرمایی با احساس و خیلی فرمایی راحتیه این راحتیه خیلی جالبه بهلت اینکه خیلی از اک ها رو من دیدم که اینها رفتن تو محیط عمومی گرفتم مثلا از یه دختر پسر توی یه کانکس عکاسی کرده بودن یه کانکسی که احتمالا اینا اونجا زندگی میکنن و اتفاقا چقدر هم قشنگی بودش یا مثلا نگاه میکردم یه دختر پسر دیگه ای رو توی پشتبون عکس گرفتن، لبه پشتبون اینا نشستن و مثلا اون پشت دیش های ماهوا اینها رو میبینم یا مثلا توی خیابون، یار صدامادی هستن که تو خیابون عکاسی کردن یا از یک زوجی جلوی شیشه یک فروشگاه عکاسی کردن نئون اون فروشگاه توی پس‌زمینه عکس بودش خیلی جالب بود چیزی که خیلی قشنگه توی این ها که احتمالاً اگر عکس‌ها رو شما ببینین این رو تایید میکنین این هستش که خیلی پوزای قشنگی من به نظرم میاد چون این دوتا خودشونم خودشون هم آموزش پوز گرفتن و جست گرفتن رو دادن به نظرم میادش که اینها خودشون اونجا با هم وای میستن و خودشون فرم میگیرن و به اون سوژه هم میگن که شما اینجوری فرم بگیرین چون خیلی بعیده که اینها بتونن انقدر راحت سوژه فرم بگیرن و پوز بگیرن پوز اینا خیلی قشنگه واقعا عکسایی که نگاه می کردم مثل اغلب عکس‌های حرفه‌ای پورتری، عکس‌های اینا خیلی بوکه‌های فوق‌العاده داره یعنی این که با لنزای گرفتن که احتمالاً لنزای دهن باز و دیافراگم بازه و پس زمینه عکس‌ها رو مات می‌کنه. خب خیلی از ما هم این کارو خود منم چند تا لنز دارم که من یه دور لنز 70-200 دارم با f2.8 که بوکه خیلی قشنگی میده. باز یک 50 پرایم دارم f1.8 بوکه اون هم خیلی قشنگه. خلاصه که این هم دارن با همین لنزا و دوربین عکاسی میکنن چیزی که خیلی به نظرم اومدش اینه که رنگا و اون ترکیب تونالیته رنگی که روی عکسشون هستش یه چیز خیلی فوق‌العاده ای عکسشون یه جلوه خیلی خاصی داره یه جلوه‌ای که معلومه کار شده روش چیزی نیستش که همینطوری مثلا با یکم بالا و پایین کردن کنتراست عکس بهش رسیده باشن اومدم رفتم توی ویب فیلچستر ببینم که اصلا توضیحی داده که این عکس‌ها رو با چی درست میکنه که دیدم بله بازم بالاخره پای لایتروم و اون فایل خام و اینا اومده وسط یعنی اینکه این آقای فیلچستر همه عکس‌ها رو میبره و توی لایتروم اینها رو تنظیم رنگ میکنه بعد چیزی که خیلی جالب بودش برای اینه که این فیل بجز اینکه عکاسی داره میکنه و از راه عکاسی داره پولر میاره از مردم یه جور دیگه هم داره بیزنس میکنه یعنی اینکه چه شکلی میادش این لایت روم رو که داره باش کار میکنه اون تنظیمات رنگ و نور لایت رومش رو به عکاسا میفروشه یعنی این میدونه که یه سری از آدمایی که وارد وبسایت این دارن میشن مشتری نیستن اینها عکاس هستن و میگه خب چی بهتر از این من که انقدر خوب بلدم با لایتروم کار بکنم بذار روش کار کردنم رو به عکاسا بفروشم البته خب این روش کار کردن توی لایترومش بر اساس اون هاست. اما پریست چیه ببینیم پریست یک سری تنظیمات از پیش آماده است که شما میتونین ذخیره کنی یعنی مثلا من یه تنظیم رنگ و نور خاص رو, رو روی یک عکس درست می کنم. بعد من میتونم این تنظیمات رو ذخیره کنم بعد این رو مثلا بدم به شما شما این رو توی کامپیوترتون توی لایت روم البته فتوشاپ هم این رو داره که توی فتوشاپ باز می‌کنید قسمت فایل خامش این رو داره البته اون تنظیماتی که باز می‌کنی یه دکمه می‌زنید هر کاری که من ریاکسم کردم اینن همون جوری عکس شما همون جوری میشه یعنی تنظیمات رنگ و نور عکس شما دقیقاً شبیه رنگ و نور همون عکسی میشه که نمونهش رو دیدین و پریستش رو از من گرفتین خیلی از مردم دارن این ها رو اینترنت میخرن و میفروشن و با همدیگه شیر میکنن و و چیزی که باید بدونین اینه که خیلی از وبسایت‌ها هستن خیلی از عکاس‌ها و ها هستن که این پریستا رو نه حالا حتما همین پیریست هایی که فیلچستر داره باش کار میکنه خیلی پیریست هایی دیگری که دارن رو به رایگان اشتراک دارن میذارن من توی پست همین پادکست توی وبسایت دیجی میج یه لینکی رو براتون میذارم که شما میتونید نزدیک صد خورده ای از این پیریست ها رو از اونجا میتونین دانلود بکنین و توی فوتشابتون بذارین یعنی در واقع توی فوتشابتون لودش بکنین و خیلی از اینا رو میتونه استفاده بکنید به راحتی من قبلا خودم استفاده کردم این مال یک شرکت خیلی معروف هستش به نام آنوان که این شرکت پلاگین درست میکنه برای فتوشاپ برای لایت و این پریستا رو به رایگان یک دو سال پیش بود منتشر کردش بعد من فایل اون رو میذارم برین از اونجا دانلود بکنین دیگه نمیخواد از این دوستمون این پریستا رو بخرید بعد میتونن اونها رو دانلود بکنن راحت استفاده بکنن چیزی که خیلی جالب بودش اینجا یعنی که آقای فیلچستر انقدر به کار خودش مطمئن و انقدر به فروش این پلیست ها مطمئن هستش این پیلست ها روی سایت خودش نمیفروشه. رفتی یک سایت دیگه ای زده به نام فیلچسترپset.com بعد اونجا آورده نمونهکسهایی که با این پیلست ها درست شده رو گذاشته خود پیلست ها رو هم گذاشته اونجا فایلش داره میفروشه، بعد از قیمت 40 دلار و 70 دلار اینا داره تا تقریبا 100 100 و خورده‌ای دلار دارین‌ها رو میفروشه و شما میتونید بریم بخرید. به حال اگر که علاقمند شدین که حتما همین پیل ستاره استفاده بکنین، میتونین برین به این آدرسی که آدرسش رو هم من گذاشتم توی همین پست همین پادکست توی وبسایت دیجی میج، میتونین اونجا برین و از اونجا برین توی سایتش رو خریداری بکنین. تمام لینک‌های مربوط به این دو تا وبسایت رو هم من توی پست همین پادکست گذاشتم یعنی شما کافی هستش که وارد سایت دیجی میج بشین همین سایت من و بعد برین توی قسمت پادکست و توی قسمت پادکست وارد همین پستی که مربوط به این دو تا آقا و خانم هستش بشین و اونجا لینک ها رو من گذاشتم میتون روش کلیک بکنین و برین و وارد سایتش بشین نمونه عکسایی هم که اینها کار کردن چون نمونه خیلی قشنگی هستش من یه دونه نمون اکسش اینجا گذاشتم روی خود فایل همین پادکست ولی باقی نمون اکس ها هم توی کانال تلگرام گذاشتم و هم توی وبسایت. سلام از اینکه این پادکست رو گوش دادین اگر که دوست هاش دارین که عکاسی میکنه یا اینکه به عکاسی علاقه این پادکست رو بهش معرفی بکنین اونها میتونن توی مترو، تو تاکسی، پیاده روی وقتی دارن روی ترد میل توی باشکا میدونن وقتی که شب میخوان بخوابن به این پادکست گوش بدن البته بگم بهترین زمان برای عکاس ها برای اینکه به پادکست گوش بدن وقتی که دارن عکسشون ادیت میکنن. من خودم معمولا وقتی دارم عکس ادیت میکنم، چون نمیتونم چشم از مانیتور بردارم پادکست میذارم و گوش میدم و ازش هم لذت میبرم هم یه چیزایی یاد میگیرم. اگر که درباره این پادکست نظری دارین توی صفحه همین پادکست توی وبسایت برین و اونجا برام کامنت بذارین. عکس به خیر.